باب باب تعجب است آزار باب تعجبه تعجب چی هست ؟ تعجب چیه که این باب رو براش درست کرد. تعجب رو میگن ات تعجببه انفعالون از تجب انفالون یک دو صففه انفعال و اثریست که در انسان ایجاد میشه یه دو النفس نفس این در مشاهدت این در حل سببه بود اگر انسان مشاهده کنه چیزی رو که جاهل است نسبت به سبب او در او یک شگفتی یک انفعالی ایجاد میشه به اون میگن چی؟ از تحجب انفعالون یه دو صفه نفس اند مشاهده ما یجهل و سبب و یقل لفی وجوده هی. جاهل هست به سببش و اون شی هم بگید در وجود خودش چیه قلیل نادر کثیر نیستون کثیر باشه خب قدران چشمش بهش یقل لفی وجوده و به خاطر همین هم هست یه ضربور مثال دارن میگن ازا زهر از سبب بتلل عجب اگر سبب یک مطلب آشکار بشه دیگه جایی برای تعجب نیست ازا زهر از سبب بتلل عجب اگر سبب ظاهر شد دیگه عجبی در کار نیست چرا چون دیگه انسان جاهل به سبب نیست هم در او ایجاد نیست. پس تعجب یک اثری است در روح انسان، در نفس انسان که پیامد چیزی است که انسان جاهل به سبب اونه و اون شی هم قدیل الوجوده، نادر الوجوده. هذا باب التعجب. این باب باب تعجب است. حالا باب تعجبی رو که ایشون عنوان میکنه میتونیم به دو دسته تقسیمش کنیم یکی بابی که سیغه خاصی برای تعجب داره وضع کردن سیغه خاصی رو برای اصحار و انشاء تعجب. این همینیه که این باب رو براش وضع کردن دوتا سیغه براش وضع کردن یکی ما افعلهو و یکی افعل به این دوتا رو وضع کردن برای که انسان بتونه انشای تحجب ما احسن زیدن چقدر زیباست احسن به زیدن چقدر زیباست حیاسی هم هست با شرایطش از فرد ما می سازم. اما این نیستش که انسان اگر تعجب کرد فقط از همین دوتا سیغه استفاده کنه تحجب که بکنه از الفاظ دیگری هم بگید استفاده میکنه استفادهش از الفاظ دیگر غیر از این دوتا پس این دوتا رو میگیم باب تحجب اما تحجب به طور مطلق خارج از این دو با، باز به دو گونه است. یکیش قیاسیه که میرسیم توی بحث بعد از این باب تعجب، باب انشاء مدح زم که برسه میگه هر فعلی رو که ببریم به وزن فعلا دلالت بر انشاء مدح زم به همراه تعجب میکنه. زَر و بر رجلو یعنی چقدر این زننده است؟ اصلا ذات داده زدن. علو بر رجلو چقدر این داناست؟ که تقریبا اون قیاسیه بر وزن فعوله ببریم مثل همین بسم الله الرحمن الرحیم رحمان الرحیم رو که صفت مشبهه میگیرن بعضی هم میگن از چی گرفته شده از رحمه که فعل لازمه و دلالت بر انشاء مد به همراه تحجب و هم الفاظ دیگری که برای تحجب میکن مثل یکیلو میبینن تحجب میکنن میگن سبحان الله تعجب میکنن مثل سوره یوسفی داره راشل ابتدا وقتی یوسف گفتن ماش علی الله ما بشه هم. این بشعر به هم فهمت نظر حالا با این مقدماتی که ما داشتیم جملاتی که کردین اول وقتی اونی که براش با ترجمه درست کردند در و سیاسیه دو تا بحث یکی ما احسن از زیندی که احسن به زین اونی که تعجب رو باهاش اظهار میکنن ولی داخل در این دو باب نیست دو جوره باز یکیش خیاسیه مثل وزن فعلا که به وزن فعولت این رو, رو و یکی از رو ها و گونه های متعددی است زیاد مثل دیبا معروف کیسا تک فرموده اندا و کنتم انوار تن فرهیاد کیسا تک از ادات استفهام لفظا مبنی بر فد منصوب حال است از برای وا ب تکبرون اما اینجا استفهام اینجا چیه برای ترجمه یعنی ما تعجب میکنیم شما چه کفر به خدا میفر حال از برای وا ب تکفرون تکبرون فعل و فعال. بله متعلقه به الله متعلق به به الله متعلق به تکبرون و کنتم انباطن فا کن و کنتم واقع و حالیه یعنی وقد کنتم قد در تقدیره کنتم تم اسمش انباطن خبرش و حالا که شما جامد بودید بیروح بودید مرده بودید خداوند فا کن و فایاتفه احیا کن فعل و فایل و مفعول از رجای چه شما کفر به خدا می ورزید و حالا این که زندگی شما و زنده بودن و حیات شما از خداست هست تعجب. هر چی تو قرآن علم تره هستش همش برای تحجب استفهان برای تعجب بسیار زیاد بکار می این از این. یا مثل این مثال سبحان الله سبحان الله اِنَّ الْمُؤْمِنَ الْا یا این سبحان الله معاز الله در جایی به کار میره برای هر جون این رو نعمون کنن حدیثیست از پیغمبر اکرم که سوال کردن که آیا مرده انسانی مرده مؤمن نجس هست گفت سبحان الله یعنی عصب بهو سبحان الله سبحان الله مفعول و مطلقه های مقدر جاش نشست گفت تعجب میکنم این المومنه های انجس مومن هیچ وقت نجس نیست مؤمن که نجس نمیشه این المومنه های انجس المومن ها؟ اسم این نست لاینجس خبرش بعضی همینو لاینجس نقل نکنه حتی لوایت قویش که حتی در کتاب اوزه ابن شام هم هست لاینجس بعضی خوندن لا یبخست لا یبخست یعنی کم فروشی نمی کنه کمش نمیگذاره مومد این کاره نیست ظاهران یک کار زشتی رو به مومن نسبت دادن یا سوال از او کردن با تحجیب گفته سبحان الله مومن که این کاره نمیشه در مقام تحجیب مثل آشالالله ماهازا آشال واهن لیلا واهن لیلا سم واهن واهن واهن اسم فعل به معنای اتحجیبه واهن للیلا واهن للیلا متعلق به واهن اسم فاعل سم واهن واهن سپس تعجب تعجب یعنی تعجب میکنم از خانم لیلا تعجب میکنم تعجب میکنم دوممی و سوممی تاکید بر اولی است المونا منى المونا مناجمه منیه یعنی آرزو این خانم لیلا المنا. همه همه‌ی آرزوهای ماست هی المنى لو اننا نلناها لو اننا نلناها لو اننا اگر ما نائل بشیم اونو لو لولوی شرطیه انی که بعد از لو میاد به بستر میره فاعل یک سبته مقدره که فعل شرط شه این قول اصح یعنی لو سبت اننا نلناها نا اسم این نا نلناها فیل و فایل و مفعول جمله خبرش اگر ثابت بشه که ما او رو به دست میاریم با لو هم گفته یعنی احتمالش رو کم کرد هیلمونا دلیل جزاس نسبت به لوی شرطیه. یعنی او همه ی آرزوهای ماست اگر نائره به مون بشی خب با کلمه چی تحجیب خودش رو از لیلا عنوان کرده؟ با کلمه واحن اسم فیل ول مباو و بلحوف نحوه ول مباو و بلحوف یعنی اونی که براش باب درست کردن تو نحوه اینطور طور چیزها رو تو نحوه بگید این نوع موارد رو تو نحوه توش بحث نمیکنن چرا؟ چون باب تعجب نیست واحن یا مثلا سبحان الله یا کیفتک فرونه اینها برای تعجب وزن نشدن اما برای تعجب چه شدن؟ استعمال شدن اینا تو نحو ازش بحث نمیکنه. لذا سمایی هم هست قیاسی نیست اما ول مبب و بلحوف نحوه سیغتانه اما اونی که براش تو نحوه باب درست کردن دو قاعده درست کردن دو تا سیغه است اشاره الهی هما به قوله اشاره کرده است به این دوتا به چی؟ به قوله که یکیش چیه؟ ما افعلهو و یکی افعل بي. مثلا تو قرآن داریم قتلل انسانو ما اکبره قتلل انسانو یعنی مرگ بر انسان بود. ما اکبرهو چه هدر این کافرکیش هست نمک نشناس هست ما اکبرهو یا تو قرآن نسبت به جهنمی ها میگه ما اصبره هم النار. ما از هم بگید علن نار یعنی تحجبه چجوری اینها ها اینقدر صبور شدن نسبت به آتش جهنم؟ ما از هم علن نار قابل طاقت نیست چطور این ها تحملش کرد؟ یا مثلا تو قرآن داریم اسم ابهم هم و ابسر میگه چطور میشه اینا روز قیابت چشاشون مثل دربیم میشه چشمی میگه اینجا تا نکه بینیش رو نمیدید اگر آیات رحمانی رو جلو جشن بیگه نمیدید اونجا اسم بهم و خوب میشنبه خوبم اما خوب توجه کنید تعجب در مورد خداوند همونطور که دوی کتب کتاب مثلا عوامل, عوامل فنه دیدید تعجب در این برمیگرده به کی؟ به بندگان مثل ترجی که برمیگرده به بندگان چرا چون بر خدا هیچ چیز مخفی نیست که بخواد تحجب داشت تعجب گفتیم امفعالیه که بر اثر جهل سبب و قلت وجود به دست میاد قلت وجود اون شی لذا در خداوند تعالی قابل تصور نیست تعجب هایی که در قرآن هست همش مصروف و نلل عباد برمیگرده به بندگان بخوانیم از شعر نگاه کنید به افعله انتق بعدما او اوجه به افعل قبل مجرور به با و تل و افعله انسبنهو کما با خلیلینا و اصدق به ما به افعله متعلق به انتقه انتق, انتق یعنی به بعدا حال از برای افعال یعنی به حال از برای افعال است به افعال انتق بعد یعنی ثابتتا بعدا حال از بذاره افعال به افعال نتخون در حالی که بعد از ماست یعنی چی باشه؟ ما افعال بعد ما، این لفظ ماه ها مضافون علاقه بعد. تعجبن این تعجبن دوتا ترکیب داره ایک یکی که مفعول الله باشه یعنی به جهت تعجب کردن مفعول الله حصولی چون تعجب کردی مثل قد توان الهر به چون تعجب کردی تعجب در تو حاصل شد پس برابرین نت خون با چی؟ با افعالهی که بعد از ما. مفعول الله و میتونه حال هم باشه از برای فائله انتق، اما باید تعبیر بره به متعددان، تعبیر بره به چی به متعددان؟ یعنی به A انتق بعد ما تعجبان، درست؟ O J O J به A او O O که برای چی میاد؟ برای تأخیر آمده میگه میتونی با افعل بگی میتونی اوجه به افعل یا افعل بیاد ج فعل ضمیر انت فاعل به افعل متعلق به ج قبل مجرورن به با قبل حال از مجرور با حال از برای مجرور با مجرور با کدوم مجبور با به افعل آه به افعل حال از مجرور هر بجر یعنی از افئل یا بیاور افئل را در حالی که ثابتتن موجودتن قبل مجرورن ببا یعنی قبل اسم مجرورن ببا و حالا که این افئل قبل از یک اسمی اومده که مجروره به چیه؟ بباز از این عبارت معلوم میشه که چی؟ مجروره به افئل و افئل مقدم افعل حتما در حالی که قبل از مجرور به باست قبل مجرور به با مجرور مضاف قبل به با متعلق و مجرور حالا افعل با یک اسم مجرور بعد از خودش یعنی احسن بذید اما ما هم که بعد از افعل اومد ما افعل بعد چی میگه بعد تل و افعل الانسبن نهو ما باب عاطفه تل مفعول یک انسبه مقدر که این انسبن نهو چی کارش میکنه تفسیرش ما باب چی میگم هم عطفو درست میکنه هم حمل جمله انشایی بر اخبار نمیشه چون اگه مرفوع بخونیم تلو حمله انشا بر اخبار میشه عطف هم دیگه نمیشه دو ما کرد چرا چون خبریه مبتدا داره و تل و افعل یعنی ان تل و افعل تالی افعل تالی افعل یعنی چی یعنی اونی که بعد است افعل است ان سبنهو شده و فارم که مفعولش انفال مثالو مثالش کما خبر مبتدایه محصول مثالو هو کما اوفا خلیلین و اصدق بهما مثالش مثل ما اوفا خلی اینا و ق به ما. مثال دیگه مثال هو کما این ما اوفا خلی و ق به ما چند ترکیب داره، ما اوفا مثل ما احسن زیدن چهار تا ترکیب داره. از عدن ترکیب تا تکیب داره، ق به ما دو تا ترکیب داره. که تو عبارت پایین اینها رو خواهد گفت و ما ترکیباتش رو شما میگییم هرچند که چندی بار تکرار کردیم. به ل انتق حالک ها هی حالکونهی نوشت که بگه چی؟ آه. که این بعد ما حال است از برای دفعه بعد ما ان نکرته بعد از مایی که چیه نکر است مای نکره ببینید چهار تا قول در اینجا هست ما احسن زیدن رو بنویسید ما احسن زیدن ترکیب اول ما نکره تامه ما نکره تامه چون معنای تعجب دارد مصفقه ابتدایی به نکره یعنی ما به معنای شیع هم, هم این تحجبش احسن از ایدن فعل و فاعل و بگو مفهور این جمله خبر این قول ابن شام در مغنی پس ما چی به معنای شیع نکره تامه یعنی ما بعدش هم چیزی دنباله نداده تامنست احسن از بگو جمله خبرش و تعجب هم مصفده یک دو ما نکر است اما نکره موسوفه فراد ما به معنای شی، مبتدا ما به معنای شی مبتدا احسن از ایدن صفت فعلش چیز صفتش احسن از ایدن خبرش محذوف خبرش محذوف یعنی شی اون اح سن از زیدن عظیمٌ شیء احسن از زیدن بگو شد؟ ترکیب سوم ما رو ما موصوله بگیریم بنابرای قولهای اخفش احسن از بشه سله خبرش بشه چی؟ محضوف یعنی آن عظیم دلست شد؟ یعنی چی؟ یعنی علزی احسن زیدن از این یه ترکیب چهارون من داره که ما بشه مبتدا و احسن زیدن بشه خبرش اما ما خودش مثل رجعیل باشه ما خودش مثل چیه؟ رجعیله که صفت و مصوف با هم دیگه یک کلمه شدن رجعیل یعنی رجلون رو، بهش میگن صفت معنوی داره یعنی در معنا صفت داره ما هم اگر بندازیم تو آزمایش یه مقضای گرمش کنیم در میاد شیعون بگی عظیمون این هم قول آیه نشان ما به چی؟ به اون از ازیمون. بشه نکره موصوفه. خب حالا باز این ترکیبات رو تکرار می‌کنیم. چهار تا تکی. میگه به افعله انتق حالاکونه بعد ما ان نکره. ما خواستیم بگیم که ایشون که گفته نکره میخواسته سه موصوله و معرفه بودن رو که قوله ای اف باشه چیکار کنه بذاره؟ ان تا تعجبن. اگر اراده کردی چی؟ تعجب رو. یعنی انشاء تعجب رو. او جئت به اقل یا اقل بیار میگه و خبران خبرون به صيغه الامر اینجا مصامحه شده و خبرون به صيغه الامر خبرون لفظا به صيغه امره باز لفزن و الا انشاء هیچ موقع خبر بگیر نیست انشاء چیه چی تعجب انشاء است عل القول انشاز و خبر نیست اگر گفته این خبره به این دلیل نگاه کنید احسن به احسن به زیدن آقایون ترکیب میکنن که احسن به این طور بوده احسن احسن زیدن یعنی احسنه بوده فعل مازی بوده برای تعجب مثل افعاله بعد اومدن تغییر دادن فعل مازی رو به شکل فعل ام. درست که حیکل شده فعل ام. درست شد؟ وقتی شده حیکلش فعل ام احسن بعد دیدن دیگه نمیتونه اسم ظاهر رو رفت بده چون اسم ظاهر رو رفت بده این حیکل با اسم ظاهر زشت در میاد مثل علف لا هم که بر سر فعل مزارد در می آمد می گفت قلیله و صفتون صریحتون سلطان و کونها به معرب الافعال قلب با که سل محصول باید بر سر جمله در بیار ولی میگم اینجا بر سر فیل در بیاد چون هیکلش هیکل حرفه چیه زشته اینجا هم میگن افعر بیاد رد بده به اسم ظاهر چیه زشته لذا اومدن یه بای جاره بر سرش در آوردن میگن بای جاره لازمه نمیشم حسبش کنی چون حسبش کنی باز بر میگرد و همی زشتی میگه این ظاهرش امره اما باطنش چیه؟ به شکل فعل مازی بوده که برای خبر به کار برفته ظاهرا و لفظن امر است باطنن و واقعا لفظش به شکل فعل مازی است خبری است لذا میگه و خبه خبران بسیقته امر قبل فاعل لهو میگه قبل از یک فاعلی برای او مجرورن به با که این فائل هم مجرور شده به چی؟ ببا. چرا مجرور شده به با؟ اصلاحاً به جهتی که ما میخواستیم اصلاح کنیم لفظو چون وقتی افعل درست کردیم که دلالت برای انشای تحجب کنه از افعله از احسنه احسن درست کردیم دیگه این احسن رفت بده به اسم ظاهر اون چیزی که حیکلش امره رفت بده به اسم ظاهر یه مقدار چیه؟ زشته گرچه این امن نیست بلکه مازیه واقعاً برای انشا به کار رفته. ولی چون هیکلش امره ما هیکل فاعلش هم کردیم هیکل مفعول به باسطه یعنی در لفظه در لفظ شد مثل امرور به زیدن امرور به زیدن چطور الان به زیدن مفهولشه؟ در لفظ اون احسن به هم در لفظ به شده چی؟ مفهولشه گرچه به شکل مفهولی اومده گرچه در واقع فایله و بابای جاوی زایده است قاعده لازمه و احسن هم در عرض بوده؟ احسن بوده قبل فایلن لهو مجرورم ببا اگه سمدیه یادتون باشه بعضی قاعد شده بودن که این خودش فایله احسن به زیدن زید خودش فایله اصلش بوده احسن زیدون همزش هم همزه چیه؟ سیرورته یعنی سارزا حسنه بعضی هم قائل بودن که این به زیدن مفعوله به زیدن چیه؟ مفعوله و احسن فائل درش مستتره یعنی احسن امیتر به زیدن آه؟ یعنی فائلش رو زمیره مستتر میره ایشون اون قول قبول نکنه گفته نه با بر سر فائل در اومده بر مفعول در نه قبل فائل اللهو مجرورم به با زائلت لازمت این با زائده لازمه است و تل و افعل تل میگه یعنی چی میگه یعنی تالی تالی یعنی چی یعنی تابه تابه یعنی چی اون که واقع شده بعد الضی بعده و انسبن نهو مفعولن نسبش بده بنابر مفعول و تل و افعل عزررو اما تل و افعل رو عزرر حکما تقدمن جذرش بده اما تو که تو یه خط بالاتر گفتی کما او با خلیله اینا و استق به ما. پس مثال صحیح و ترکیب صحیح چیه این که ما رو بگیم چی مایه نکره مبتدا درست او فا خلیل اینا رو بگیریم خبر حالا نکره ای رو که درست کردیم چه نکره شد سه جور شد نه یکی نکره چون معنای تعجب داره شده مبتدا یکی نکره چون خودش معنای صفت داره شده مبتدا شیون ازیمونه یکی هم نکره چی؟ چون خود احسن زیدن صفتشه خبرش در تقدیر شبا این سه تا ترکیب یکی ما رو چی گرفتیم ما؟ مایه موصول گرفتیم مایه موصول گرفتیم و احسن زیدن شد چی؟ سله و خبرش شد چیان از این اما همه این ترکیب ها رو بذاری یه طرف ترکیب صحیح ترکیب مرهوم رزیست در اینجا همه این اقوال به یک طرف این قول به یک طرف مرحوم رازی میگه ماشمای استفحانی هست و خود استفام هم مصبق ابتدایی به نکرشه مختلاست مای استفحانی هست و احسن از ایدن فعل و فایل و مفعول چیه؟ خبرشه میگه و استفحام هم بسیار زیاد در معنای تحجب بکار بیده بسید کعیفه تکفرونه بله و کنتوم هم واتن فهیاده علمتره های در قرآن استفهام کسیرن ما به معنای چی به کار میره؟ ترجم و ما مایه استفهامی از این قول مرحوم رزی از همه این اقوال چیه؟ قویتر؟ ما باز نکره با اما نکره استفهامی درست شد؟ آوفا خدیده اینا و استق به هما استق به هما هم گفتیم استق به ظاهرش امره به هما با با یه لازمه هما نفزن مجرور به با محلن مرفو فایل است. این قول آقای ملاجلات بعضی هم قائل شدن که اصدق خودش بیره همه به هما جار مجرور متعلق به استق. درست متعلق به چی؟ استق؟ بعد این استق به هما که اصدق شد زمیر انتر فایلش به هما متعلق به استق. اون زمیر انتر رو بعضی گفتن خطاب به مخاطب داره یعنی من وقتی به شما میگم اصدق به یعنی تو اینها رو صادق کن چقدر اینا صادق تو صادق بدان اینها رو بعضا میگن نه برمیگرده به مصدر همون فعل اصدق به یعنی ای صدق تو اینها رو صادق رو اون که قولیه که دیگه ما مورد نظرمون نیست دیلی نظرش نبین اصدق به هما. خب اون کسی که میگه حمزه اون کسی که میگه استقفل است و زمیر انتفاعلش حالا یا به مخاطب یا به مستر فعل هم برمیگرده خطاب به او به چی میگیره؟ دو تا قول دارن باز اختلاف کردن ادهشون گفتن حمزه همزه تعدیه است پس با میشه چی؟ زایده اده گفتن حمزه سیرورته پس با میشه بایه؟ تعدیه خلاصه کلام در این عبارت همین شد استقفر به هما فاید این قول مشهور با هم جاره برای اصلاح لفظ هم ماده. قول بعدی استقفر زمین انتا فاید یا خطاب به شخص مخاطب هر کسی که خطاب به او میشه یا خطاب به ماده اونفر یعنی استق ایو هست صدقه اینطوری با یا زایده یا برای تعدیه بستگی به این که حمزه اصطق رو چی بگیریم حمزه تعدیه بگیریم با دیگه برای تعدیه نیست حمزه سیرورت بگیریم با میشه برای تعدیه این هم اقوال در اصطق حالا نگاه کنیم محض فما منو تعجبتر استبه مواقع آتفه حض فما مفعول استبه حذف ما مضافون الیه تعجبت من هو تعجبتا فاعل من هو متعلق به تعجبتا خاصن عايد سلب محصول حذف آنچه که تعجب کردی از او یعنی متعجب من مثل مثلا فرض کو ما احسن زيدن چی متعجب منه ه زید درست حذف این زید استبه استباه یستبیه و استباهتن یعنی مباه شمورد میگه حذف آنچرا که از او تعجب کردی مباه بشمورد و جایز استش کالی نه حذف اما منهو تحجبتا استبه انکان این در حذف معناهو یزه وزه ها, یزه ها. انکان این در حذف معناهو یزه اندر حذف متعلق به هو معناه و اسم کان است یزه هو فعل و ضمیر معنا فاعلش این جمله خبره کان است خود کان با اسم و خبرش فعل شرط ene جزاو شت به قرینه استبه شده حذف میگه اگر اونی که قرار ازش تعجب بشه معناش تو عبارت واضحه قرینه داریم میتونی چیکارش کنی حذفش کنی و حذف ما من هو تعجب تستبه انکان این در هست معناه و یذ و حذف ما منهو تعجبت و ابقاء سیغت تعجب حذف اونی که ازش تعجب کردی و باقی گذاشتن سیغه تعجب استبه مباه دوش اشکالی نداره. امکان اندل هست معناهو یزه اگر نزده هست معناش چی باشه؟ یزه واضح باشه بعضی خوندن اینو امکان اندل هست معناهو یزه یسه خوندن صحیح یسه هو. معناش چی باشه؟ صحیح باشه حالا ایشون یزه رو پسندیده بوده وضحه یزه هو. که دیگه ها هم مشدد نیست چون یسه هو ها چیه مشدده لذا برگشته معنا کرده یزه رو به ولا یلتبس معناش واضح باشد یعنی چی؟ یعنی ملتبس نشه من اگه از در برسم تو بگم ما احسن هم. چقدر زیبا اونجوری نمیفهمید کی اما اگه گفتم ما احسن از زیدن و اعفر یعنی چقدر زید زیباست و عفیفه اون موقع شما میفهمید که و اعف برد. یعنی و عف هو ضمیر برمیگرده به زید اسم بهم و ابسر تو قرآن میفهمید فهمید که یعنی و ابسر بهم میگه جایی که معناش واضح باشه ملتبس نشه که قول هی تعالی اسم بهم و عب سر اسم بهم و عب سر فقلش بنویسید انکان فعلون انکان افعل دیمونه افعل بهتر انکان افعل معتوفن علا آخره اگر افعل عطف شده باشه بر یک افعله دیگر مثل عب که عطف شده بر اسمه معتوفن علا آخره مذکورن قبله که ذکر شده قبلش مثل و کل مثل و محزوف کل و مثل همین محزوف هم هست امکان افل معطوفاً علی آخرم مذکور کور محو مثل ذال کل محزوف نبول آیته مثال مانند این آیه این شرطشه یعنی این مثالی که از قرآن زده شرط در افل اینه که عط شده باشه ولی یه چیزی که بگید ماغم اومده و فاعلش ذکر شده یعنی من میتونم بگم چی؟ افعال بهی و افعال اما نمیتونم افل خالی بگم گرچه فاعل چی باشه مشخص باشه میگه و اما قوله و اما قوله. الان این شیر رو نگاه کنید فضالک فضالک این یلقل منیت فضالک این یلقل منیت یلقها فضالک این, این یلقل منیت یلقها حمیدن اون بره مصره حمیدن و این یستقنه و این یستق نیومن فعج دری فعج در رو اطلاقی و اشبایی میگیم فعج دری الان نگاه کنیم فعج در بوده چی؟ فعج در بهی دیگه میگه فضال که این یلغل منیت یلغا همی میگه این شخص اگر ملاقات با مرگ بکنه خیلی زیبا با مرگ ملاقات میکنه و این یستقنه یومن و اگر به برزد در روزی قنا داشته باشو به ورز روزی فعجدر بهی یعنی چقدر قنا به او زیباست چقدر شایسته شد بهی بوده افتاده این اما او و اما این قول شاعر که اومده عجدر بهی درست کرده و بهیش رو کرده این چیه؟ شازده چون قبلش مشابهش بگید نیست پس بنابراین این شرط عصم بهم به و حبسه اینه که چی؟ دومی عطب بشه باشه اولی و فایلش هم ذکر شده باشه ولی اگر عطب نشده باشه گرچه معناش هم واضح باشه صحیح شاز، فضاله که این یلقه منیت و یلقه ها و این یستقنه یومن و عجدلی این یک و قول علیهن علیه السلام این اجدر رو تو ذهنتون داشته باشید برای موردی نقلش کردم که بعد نیازشته. و قول علی علیه السلام و قول علی علیه السلام و قول آقا امیر المومنین در طایفه ربیعه گفته اینو الله انی و جذا او به ما و عکر ما در این شرط نیست که طر شده باشه حالا اینجا عطر شده باشه اما می در خود تازه معطوف نعلیهش هم زمین ذکر نشده یعنی مفعولش ذکر نشده ما تعجبب الله و مفعولی الله فیلشه عنی یعنی از جانب من متعلق به جزاست یعنی خدا جزا دهد از طرف من ربیعت مفعول اول جزاست خیرن مفعول سانی جزاست میگه خدا از طرف من جزا دهد طایفه ربیه. جزای به ربیه تایفه ربیه جزایی خیر. ول جزاو به فضلهی واقعا به حالی است. و حالا که اگه خدا جزایی هم بده به کسی به چی؟ به فضل او نه به استقاقش ول جزاو به فضلهی جذاب فضل خداست ما اعفه و اکرما یعنی چقدر این ها افیفند و بگید. کریم. ما اعفه و اکرمه یعنی ما اعفه هم و بگو اکرمه هم یا یعنی اگه به ربیه برگردنه میتونیم معنیس برگردنیم ما اعفه ها و بگید اکرمه ها مراهات لفظشو کنیم میگید ما اعفه ها و اکرمه ها مراهات معنا رو کنیم که اونها انسانهای قبیله میشه ما اعفه ها و اکرمه ها ما اعفه ترکیبش دیگه ما معلوم مبتدا اعفه خبرش و اکرمه هستو و فی کلال فعلین قدمن لزم ها من اتصرفن به حکمه اتمام. سیغه افعال و تعجب جز سیغه های جامده اشتقاق بگید نداره هیچی دو دلیل براش ذکر کردن یکی گفتن جاری مجرای مساله. گفتن علت جمود. اینه که این ما احسن زیدن جاری مجرایه بگید مساله. چطور مسل رو تو عربی و توی فارسی استعاره است دیستاره تمسیلی هم هست. این خودش به کار میبرند مثلا فرض کنید یک نفر میاد بیعدبی میکنه نسبت به ولی نعمت خودش میگن نمک و خوردی و نمک دون رو شکستی در صورت که اصلا نمک و نمکدونی در کار نیست استعار است میگن این جاری مجرای مساله. چون جاری مجرای مساله سیغش جامعه ده نیست بعضی هم قائلن مثل ابن شام چون این فعل دربر گرفته معنای حرف تعجب رو در گرفته چی معنای حرف تعجبو میگیم حرف تعجب نداریم میگه حرفش بوده وضع میشده گرچه وضع نشوده کشب ال معنوی فی اسمی ای کشب معنوی فی متا و فی ہونا ها معنوی فی متا و فی یادتونه گفت اسم اشاره یه موقع مثل ہونا دربر گرفته معنای حرف اشاره رو که حقش بوده وزن شده و نشده اما متا دربر گرفته حرف استفان رو که وزن شده. گفته چون حرف جامده اینم دربر گرفته معنای حرف رو میشه جامد. و فی کلا فعلین کلا چون اضافه شده به اسم ظاهر دیگه اعرابش میشه تغییری. فی کلا جار و مجرور متعلق به لزمت. واو واو استینافی است. الف فعلین مضاف قدمن ظرف است. یعنی قدیمن برای لزمن لزمن فعل من اتصرفن فایلش لازم شو مرده شده واجد دانسته شده من اتصرف اینه غیر متصرف بودن جامد بودن در هر دو فعل هر دو فعل بالا به حکمن حتم به حکمن متعلق است به من من اتصرف با حکمی که چیه حتم حکم بجوبی من اتصرف بجوبی به حکم متعلق به من، حتم فعل، ضمیر نای فاعلش که برمیگرده به حکم، رابطه صفت است به ماشرط. متعلق به من، حتم من صفتش. جمله بعد از نکره صفر. و فیکلل فعلاین، افعل و افعل به، قدمن، یعنی از قدیم لزم من اتصرفن به حکم من جميع النهار. حکمی که جميع ها دادن. درست شد؟ منجمیه این نهاد من این حکم حتمیه حتمیه هیچ شکی توش نیست اولا اینا فعلا به چه دلیل؟ چون وزن هفعله و وزن هفعل چیه؟ فعله و ثانیه نونه به قایم هم بهش چیه میچسبه یه نفر به خودش نگاه میکنه میگه ما احسننی یعنی من چقدر زیبا یا به خودش نگاه میکنه این چقدر فقیره میگه ما افقرنی الہ اس بله چقدر من فقیرم به حرف خدا اون نون به دلیل بچیه چیه حالا منجمیه نهاد حوت من من یعنی نفزند حکمی که نافذه حکم وجوبیه میگه وهما حالا نگاه کنید میگه وهما نزیر و لایسه و عصا این دو تا فعل نذیر لایسه و عصا هستند و حب و تعلم همه ای این فعل ها فعل جامد اما اون دوتای اولی لیسه و عصا جامده چی هم ماضی هم. حب و تعلم حب و تعلم دوتا از افعال غلوبه به معنای اعلام یقین کن برای حب و تعلم این دوتا فقط هم همین یه سیغن یه تعلم تعلم و تعلم او هم بگید ندارن خب اون دوتای تای رو تشبیه کرده به چی؟ که هيكلشون هيكل مازیه گفته مثل لیسه و عسا. اون دومی که هيكلش کل انده تشبیه کرده به هوا و طعن. گفته اینا نظیر اینا. نه نظیر ببینید نظیر گفته، مانند نگفته. چرا چون لیسه و عسا چی اند؟ باز لیسه لیسه لیسو چیه؟ صرف میشه. عسا عسا یا عسا صرف جو. اما افعله هیچ چیز نمیشه لذا نزیره در جامد بودن سل جمله نزیره حب و ظاهرشون امر باطنشون هم چیه؟ امره اما افعل ظاهرش چیه؟ امره باطنش امر نیست بلکه ماضیه نزیره ولی بله خب مثل حب و تعلم جامعه از او چیزی حالا از اینجا به بعد شروع میکنه به چی؟ به شرایطی که لازم است تا حفال و تفضیل بسازیم این شرایط رو باید خوب تو زند یاد بگیرید چون بعد از این باب حفال و تفضیل هم میاد همین شرایطی که اینجا میگه تو باب حفال و تفضیل هم باز چیه؟ شرطشه این همن لذا از پرده که شرط هاشو خواهیم کن تو زندتون صفر داشته باشه